از آفتا زبان چون که عموما بزرگترین گناه هایی که ما انجام میدی به خاطر زبان است این زبان انسان مشکل ساز است تمام آفتا دروغ ها توهامات غرور تکبرها منازعات جنگ فتنه‌ها از همین زبان سرچشمه میگیرند پس دروغ هم از خود زبان است پس راهبادی که بتوانیم از خیلی گناه ها از خیلی از گناهات دور بشین باید حرفها رو کم کنیم، تقلیل کلام. کم صحبت می‌کنیم. اگر کم صحبت کنید گناه ها کرد میشن. زیاد صحبت بیکنیم، زیاد گناه میکنیم حدیث داخل صحیح بخاری داریم، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودن: کلام نبی کریم پرمحتوا، جامع الکلیم هست. و ما عن الهوا انه الا وحی او یوها. از خود صحبت نمیکنه، هرچی میگه وحی الهی هست پس وقتی راه الهی هست هر فکر می بسیار پر محتوا. حدیث داخل صحیح بخاری داریم میگه انسان گاهی یه سخنی بکار بیبرد یه ای رو بکار بیبرد تو همون جمله باعث میشه او به جهنم بیاندازه و گاهی گاهی و خود اتا پروائه نداره داخل حدیث میگه اصلا پروائه نداره فکر بیکنه چیز معمولی بود چیز معمولی بود جمله بکار بود در خودش جملهش معمولی بود در حالی که همین جمله معمولی آغار به جهنم انداخت. و فرمودن گاه گاهی گاهی یک جمله بکار بیبرید. خودش هم پروائی رو جمله ندفید می جمله معمولی به خاطر همون کلامش میره بهشت. اصلا دو با هم درگیرم آغام می یک جمله بکار رو اینها رو آشتی بیده. اینا سوال کرده با این سوال اینها باعث میشه آغا بری بهشت. یک جمله بکا بیبره باعث هدایت دستان میشه میره بهشت. اما نشستین گاه گاهی بین زوجین زنوها در اخترافا یک جمله کنشی که با فکر بی که معمولیت یک سخنی میاندازیم که زندگی انوها رو تباه میکنه باست جهنم ها میشه از دارن اختلاف این براتو زنی نمیشه فیمایزی گوب دلش بدتر میشه اگر او این دوباره بیشتار خرابه به این صورت زندگی دیگه خطرناک. پس موازی باشین یه جمله ای بکاری برین انسان به جهنم نمیاندازه. هدیه صداری داخل سوره ترمیزی. نبی کریم فرمودن: صلی الله عليه و انسان که سابیدار میشه همه آزادای بدن به زبان خوشحال و زبان موازی باش. موازی باش خوب استفاده کرد خودتا چون به خاطر تو هستی ما چوبی خوریم ما جهنم نمیرویم از آدمی میرویم. این یه این صحبت میکنم. اما زبان حال هست. به زبان حال ندا میدند اگر زبان اشتباه صحبت بکنه چوبهار استان میخوره کمر درد میگیره چوب خور نه همون جمله بدوچی است که تا زبان اشتباه نکرده چوب پشت چوب نمیخوره حالا جمله بدوچی زبان نمیگه چون دشتر است حالا جمله زشت میگه اما حکمت هست. پس زبان اشتباه صحبت میکنه چوبهار میخوره زبان اشتباه صحبت میکنه شلاغ میخوره زبان اشتباه صحبت میکنه طلاق میشه زبان اشتباه میکنه زندان میره هر اشتباهات زبان کل آزار کل آزار بدن معذبن پس این زبان باید درست استفاده بشه راهش چیست درست صحبت میکنیم حضرت ابو دردا رضی الله تعالی نومی فرمایند که من کفر کلام و فی ما یعنی کفرت خطایاهو هر کسی که صحبتش در چیزات بیهوده در بیهودگی زیاد صحبت کرد این هست فقط صحبت میکنن واسه خاروبا ما شاء اگر دو خانوم یک جا بسیله تا دو ساعت هم صحبت میکنن حالا امروز ما رفتن درس ما زیاد صحبت میکرد گفت حالا بس کنید با درس بده. گفتن که تا گفتن که دو ساعت هم شما صحبت کردید سیر نمیشه گفتن دو ساعت صحبت صحبت کنید صحبت ما یک خوب اونها دیگه میشویاش اما در کل همین صورتی اگر خانوم از تو تاورو با هم میشه از صحبت بکنن از یعنی صحبت میکنه بعد در خدا به میز میکنه یک ساعت ده صحبت میکنند اونها چیزی صحبت اصل ده به هر کسی که بن کثر کلام و فیما یعنی کسورت خطایا هو هر چه انسان صحبتای بیهودزدار بکنه اشتباهات زیاد میشن استواذ زیاد. چرا صحبت میکنه غیبت میکنه صحبت میکنه توهات میزنه صحبت میکنه دروغ میگه چون این همه صحبت درست نیست بعد دروغ بگه چیزا لاینی تعریف بکنه از کجا کجا کی نمیگرا اینها درست نیستن پس حدیث داخل داخلی سران تیریوزی دارین که انسان وقتی صحبت بیهوده زیاد صحبت میکنه و انسان زیاد صحبت میکنه دل سخت میشه و از الله رب العالمین فاصله میگیره فاصله ها زیاد میشن پس معذیب باشید، صحبتها رو تقلیل بیدیم ای صحابی بیدیم اما وقتی یا رسول الله یک نصیحتی بکو که دوباره کسی رو نپورسا فای بودن درو اول آبرت و مستقیم دو ایمان آوردن و بر این استقامت بکن و بچی گو این زبانت را کنترل بکن این زبان کنترل کن این زبان چیز خوبی نیست نبی کریم صلی الله علیه زیاد سکوت کرد به فرض اکرام نمی‌نشست ساقد آرا نمی‌نشست سودگاه گاهی جملی بکار می‌بود صاحب کرام تعریف می‌کرد فقط نبی کی نگاه می‌کرد لبخند می‌زد صحبت کرد پس حرفها رو کم کنی این حرف پر حرفی مال خانوما است مال ما نیست این برای انسانی درست حال انسانی اگر حرفش هم دور باشه کلامش حکمت باشه حرفای خوب هم بزنه اگر دو ساعت سخنرانی بکنه بی, بی ارزش میشه اگر میخاست سخنرانی بکنی یا کسی یه نصیحت بکنی مختصر 4 جمله بیشتر نگو इलाकों انسانهای پر حکمت انسانهای بزرگ سخرانی اونها 10 دقیقه 20 دقیقه نیم بیشتر نیست اما ما که چیز بلد نیست دو ساعت سخنرانی آخر کار مفهوم برای مردانوس تعریف نمیشه این خوب نیست پس کم حرف سم... کم صحبت کنیم از گناهات می پاییم من, س... من سمت نجا هرکس سکوت کل نجات حاصل می در سکوت نجات هست بهتری راه... راه نجات در اختلافات در خود بازار در اجتماعات در محافل سیاسی در هر جا کم حرفی هست مثلا به طور و اگر زن و با هم اختلاف دارن اگر همیشه اختلاف بکنن راه مجات علاق باید خانوما میگن که آقا بابا خوب نیست خیلی تو اخلاقش تونده خیلی بدویرا میگه منو میزنه ما میگن سکوت کن میخوای خوبشه سکوت کن صحبت نکن جواب تونده آقا هم بدترین جواب بدترین جواب در مقابل حد سکوته امتحان کنید شما وقتی اصوادی هست دو خانوما داد میکشید خانوما اگر چیز دی خیلی بر میخوره داری داد ویداد میکنی دار دشمن هم شاید داری میزنی اما چون سکوت میکنی همون سکوت وان مارند زده یک بمب اتمی هست داری میزنی سکوت خیلی خطرناکه برای جواب بسیار سنجیله نه اگر استادی با شاگرد تو بگن جوابش خیلی بدش میاد چرا رو نمی نمیتونی تو حتی حال بگه چیزی بی بیبمو بی ولی دشمن بیام بی چیزی بی بگو؟ بی همینه پس سکوت بدترین؟ ضربه هست برای طرف مقابل سکوت کنی برای دشمن هم سکوت کنی پس برای حل اختلافات بین زوجین بهتری نسخه سکوت هست این سکوت نبی نوی کردی تجویز کردن که سکوت کنید یه خانمی رو پیش دختری همیشه درگی با آقا بیتا خونه که داد بیداده حالا این دوایی بده که من بتونم تحمل میکن آقا رو اختلافات کم بشن اون تبیبی بود و حکیمی بود گفت وقتی آقا و خون اومد یک جور آب داخل دهانت بگی و نهارا نخورد داخل دهان نگاه بیدار شرط تینی میخواه خور بشی و نه خورده بشن نه آبا بریزی تو گفت باشه دنازی آقا میومد دهان پر از آب بود آبو و نمی تا آبا نمیخورد و صحباتم نمیتا آبا میریخدد کمکن این اختلاف دارن تمام میشن خوب شد پس پیش دکتر میگه عجب داروی خوبی بودین، خوب شد من اختلافات تمام درگیری نیست ما رو نمیذین حالا گفت مشکل چی بود؟ گفت مشکل زبانت بود چون داخل زبان آب بود سواد نمیکردی آقام چیزی نمیگفت حالا زندگی خوب شد پس این همه اختلافات از همین زبانه این زبان کنترل کنی کل مشکلات مشکل بازارفی کسی اگه بعد در خور تماس رکود خودش خجالت میکشه میگه دیگه انسان خوبی بودین مرد میگه انسان خوبی بود اگر جا اگر جای رفتی کسی به ما بد کرد یا بد گفت دشمندار این از بدی ما نیست از بدی همونه داره بد میکنه. یا با جارم دعوتی مهمانی خوب از ما پذیرایی کرده از خوبی ما نیست خوبی هم میزبان داره خوب پذیرایی میکنه. پس اگر کسی بد میکنه بدی مال شما نیست پس به همول کنی سکوت کنید و کل مشکلات برطرف میشن پس این است که فرمودن که من سمتا نجا کسی که سکوت کرد نجات می یابد دست که خ نجات هست حدیث داریم زیاده ثابت رضی الله و طالانه فرمودند که که رسول الله بان ای بانچی چیزهایی بعض زبان بیر رو میکنیم ما معاقذی هم فرمودند که و یک کب و الا فنا و حستان نتهیم چیزی که انسان ها رو بیری داخل جهنم اندازه همین دراکرد های زبان ها هستند اون الله، ما باید زبان ثبتی میکنیم حت میز شروعی میکنیم فلان فلان کارو میکنیم، با کلام زبان ما میشیم یا نه نا نبی کریم و هر یک کو بر آتش فنار الا حصائد الصناتهین چیزی جهان انسان و ها رو به سر و بینی به جهنمی اندازه دروکرده از زبانه همین زبان است درو میکنه میخوره این طرف میکنه اون طرف میکنه صحبت میکنه غیبت میکنه بعد میگه دشمن میده دروغ میگه اینها گناه محسوب میشن صاحب جهنم میشن نبی داخل سی بخاری حدیث داریم که نبی مکرمی اسلام فرمودند صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند که اگر شما دو چیز برای من تزمین بدهید یک بین پاهایتان را دو بین دل لحیین یعنی دو فکر را یکی بین دو پا را دو بین دو فکر یعنی زبان و شرمدار را تضمین کنید شما دروز استفاده کنید من زامن بهشت شما میشم پس این از این دو چیز درست استفاده نمیشه. اینها درست استفاده بشن نبی کریم صلی الله علیه و آله انسانو بشارت بهش داده اند حالا بنابرین حالا این شد پس کوت پس نسخه این انشالله ان شاء الله خونامیرین سرکار سکرمیرین بیهوده حرف نزدیم سعی کنی زبان را با ذکر الهی هرچی ذکر میکنیم با خدا نزدیکتر میشید و هرچی گویی بی میکنیم از الله رب العالی فاصله میگیری. پس برایی که به خدا نزدیکتر بشین و از دنیا فاصله میگیری ذکر کنیم، از کار قلب انسان زنده نگاه میدارن. ذکر چهره انسان نورانی میکنه، قلب ایسان شاد میکنه، از چشمها نور بیرون میاد، از دهن نور بیرون میاد. این با ذکر اللهیه، دهن معتر میشه. پس قلب را کنیم. پس از این روز با از این شب که میریم زیادی صحبت فقط با خانو میتونی شوخی کنید میتونی بازی کنید اما زیاد جاهدیگه بیهودگوی تعطیل. حالا در این صورت پس گناوریم در این صورت پس رفت تا زمان نیازی نگوی صحبت نکنیم و سای کنیم به اندازه نیاز, نیاز, نیاز, نیاز صحبت کنیم نیاز بود فرانچیز دو فرانچیز بیار فران کارو بگو اینجور نیست که حال اگه میاره دیوانش بودی نه دیوانه کنیست الان فقط کم صحبت کنی، اندازه نیاز صحبت کن بیشتر نگو سکوت کن بعد فکر کردی صحبت کردی بعد نیفتم بحث. اگر این جوری بود تا این مشکلات با، اما سکوت کردم مشکل حل شد. خانم سر سرعت سکوت کن فراتر تصویب می‌گیرد، فراتر تصویب می‌گیرد وگر خون خراب میشه. اما اگه سکوت کردی یک ساعت بعد دو ساعت بعد با آرامش نصیحت کردی مشکل حل میشه. اختلاپ نیر بیرون این چیز بسیار نسخه بسیار مهمی هست بری خودتون عمل کنید به دیگران هم دیدی عمل بکنن اونس حکومت کردن خیلی از گناهات تمام میشن خیلی از گناه ها ما زودتر اصلاح میشین و به خدا نزدیک میشین که بی عمل بکنیم بعد میدو چقدر تو شده حالا خودتان انکفام بکنی از دوز دو دوغا کمتر شدن احساس آرامش بیشتر میشه خود به خود احساس میکنی به خدا نزدیکتری همین داریم دروغ نمیدیم احساس میدیم چقدر دارم خدا نزدیک میشم پس این رو شروع کریم الله که زبان به اندازه نیاز بکار رو بریم بیهوده سوال نکنی بیهوده حرف نزنی چیزی بیهوده رو بکار نبریم نبی کریف عربون صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام بالمرع ترک روبالا یعنی خوبی این است که چیزهای بیهوده رو کنار میگذارد. حالت بحث این است که حالا اسوال اول این بود که اگر داشتین ما جای بودیم یه شخصی داشت یک کلمه منکی رو به کار می‌برد توهینی می‌کن آید ما چجونی برخورد کنی با او حالا بس دروب قرار بس درو نگیم قرار از زیاد صحبت هم نکنی اما قرار نیست که امبل معروف هم نکنید امبل معروف بکنید امبل معروف, ام معروف چجوری باشه ما با صحبت نمی‌اما داره جلای ما توهین می‌کنه دارن جلومغ غیبت میکنن دارن بدی مسلمانو تعریف میکنن بهش موها و این کار نکن اما با حکمت و موعظه امیل معروف مال ناباش مثل اون باشه داری امیل معروف میتونیم اما جمله درست بکاربر اسوانی بشو اما و جمله درست اسوانی بشو از خدا بترس از از بتر. از جهنم بترس اینها رو بکار بر دشمن عمل نذورو توبیه نکن، اما تو با جدی بگو حرف خود را به جدیت بگو تا اون دیگه بعدا برای امبل معروف کردن موقعیت ضروری هست نگاه کنه حالا چرا وقتش است؟ اگر در این کلام داری توحیل میکنه به عرض و ابرو مردم دراشو بگیر اگر کار نکن اما اگر میخوای دعوت بدی اون را میخوای اون اصلاح بکنی در این حال اون اصلاح نمیشه وقتی عصبانی هست کلامش ما تأثیر گذار نیست در اون لحظه فقط امبل مع موعظه حرفت باشد بیزدم تو را حالا اینجا دیگر او ساکت میشه. برای استلاحش قدم بعدی را وقتی آرام شد، پشیمان شد، کلی بستر جوش و خروشون فروکش کرد، اون بسر فواره خون، هیجان خون پایین را حالا بیش میگو. این کارتو اشتباه بود این کارتو انجوری نیست تو داری با این کاره به جهنم میری در این صورت نصیحت شما کار میکنه پس ما دو چیز داری یک آن بیل معروف دارید یک و نصیحت دارید. اصلاح و نصیحت موقعیت میخواده آن بیل معروف و نمکف در این منکر هست مرتکب گناه جوش بگی اول کار نکن چرا نکن علامت نکن دیگه بعد که باز آمد بعد نصیحت بگو حضرت داخل قرار حضرت یوسف عليه السلام داخل زندان را اهل زندان نیگه هم بودم و شکین بودم دو نفر از کاخ عملی بودن، اونجا نشست،, نشست نشست نشست نشست از یوسف تا این خوابی دیدن وقتی که خوابی دیدن اون پیش یوسف علیه سلاط و سر خواب و تاریخ بکن و تعبیر کن تعبیر خواب ما میشه اونجا حضرت یوسف دید که اینها پیش من آمدیم. حالا اگر دعوت بدهم دعوت تاثیر گزارد چرا؟ مختاجند. اونجا گفت که نگاه کردن این طرف ملت آبایی من رها کردم اون قواها را این دواره ملتای گذشته بودن شرک و کفر‌ها گذاشتن به ملت آبای خودم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب اینها دارن چه دیگه پرستش میکنن بر این دیمن من ام ول کودی کفر ول پونش که رب خدای یگانه چند زنی نصیحت کردن اونها رو زمان اونها آمدن نصیحت قبل از اون نصیحت نکرد چه کار پس باید بابلان چه موقع استیهاد بکنین؟ آن بیلمارو در وقت گنا اما موقی استیهاد وقت موقی است. خانوک اسبانیه است، بچه چه اسبانیان؟ اون زبان نستیلشوا کارمان نیست. وقتی بچه باشم خوب بود، داره باشم میخنده، صحبت میکنه، او نستیهادی بود. پس از این کار انجام بری. فلانی کار انجوییه است. اما وقتی در خطا میکنی، دراشو بگیر دراشو بگیر این دو جواب هم اما جواب برای شوخی کردن، شوخی کردن. شوخی جایز است اما شوخی کردن جلوتر بحث شوخی را مفصل میگیم اما جواب این سوال شوخی جایز است به در شوخی دروغ نگید اگر حرفی داری میزنید این افسانه هست، خلاف واقعیت است اگر طرف ما بوتمایه نه میفهمید حرف ما رو میفهمه اشکال نداره اگر طرف داره میفهمه ما داریم چی میگیم اشکال نداره در دا شوخی افسانه را تعریف میکنی که واقعیت نیست دروغ ظاهرا اما افسانه طرفم میدون میدوت دروغ نمیگی این داستان افسانه تاریخ بیما سیمرغ ها اس کیبورگی نیست اما افسانه ای هست تعریف میکنی این جایزه به طور مثال داخل صحیح بخاری حدیث داریم حضرت عائشه رضی الله تعالی بازی ادو بعد می کنه در بعد دره به پنجره گذاشتو داخلیم تاخته با آمدن پرده رو برداشت نبی کریم دید که عروسه کی ها. بال بازو داره کو عائشی راست کنه این اسم سلیمان اسم. این سلیمان ای اسم که این آس است، گفت این بازجویی که که باصلی پرواز نمیکند، ای آس پرواز میکنه. نبی کتاب سونگا. چون که حالا این هرکل تهاجم درست بود که آس با پرواز نمیکه و تخت روان بود. اما افسانه ای مود افسانه ای که قبلها شنیده بود، حالا نبی که دامید ولی است که حالا این جرمی خنده توسط افرودن. اگر متوجه می تاریخ متوجه میشودش ما افسانه تاریخ میکنی، در شوخی میکنید، می این غلبه نیست. شوخی کردن خوب است، شوخی کردن همون به سلام. نمد در غذا هست شو ال المزاح بالكلام کلمره فی الطعام حضرت اهلی هست المزاح بالكلام کلمره فی الطعام هندا مستوبات کشی خوخی کردن مرند نمدی غذا هست خوب شوخی هم شوخی باشه که نام کسی رو نگیرید به کسی مسخره نکنید کسی رو توهین نکورید و به شخصی کسی بار نخورید این شوخیای کلی باشد برای همه اینجا مأموریتی نداره